مخمور جامعه اشخم ساغی بده شرابی پر کن قده که بیمی مجلس ندارد آبی وصف روخ چماهش در پرده راست ناید متر بزن نبایی ساغی بده شرابی شد حلق قامت من تا بعد از این رقیبت زین دردگر نراند ما را به هیچ بابی در انتظار رویت ما و امیدواری در عشبه وسالت ما و خیال خوابی مخمور اند و چشمم آیا کجاست جامی بیمار اند و لعلم آخر کم از جوابی حافظ چمینهی دل تو در خیال خوبان کهی کشن سیر گردد از لمعه سرابی